سخندانی دکتر محمد اصدی گرمارودی موضوع سخنرانی بحثی پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه چهارم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد تیبین تاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارزین اللهم انتا و من کس و لکس سلام و الیک یعود و سبحان رب کربل عزت اما یسفون و سلامون علی المرسلین و لله رب العالمین السلام عليك ای یوحنا ورحمة و الله و السلام علی الاعمّات الحادین المهديین. السلام علی جميع نبیاء الله و وملائكته و اجمعین. السلام علینا و عباد الله الصالحين. السلام علی عمیر المؤمنين السلام علی السديقة الشهیدة. السلام على الحسن والحسين سيده شباب اهل الجنه اجمعین السلام على علي ابن الحسین زين العابدین السلام على محمد ابن علي باقر علم النبوي السلام على جعفر ابن محمد الصادق السلام على موسى ابن جعفر الكاظم السلام على علي ابن موسى الرضا السلام على محمد ابن علي جنل السلام على علي ابن محمد الحادي السلام على الحسن ابن علي الذكي جن السلام على الهجة ابن الحسن القايمه المحدي السلام عليك يا عبا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنحار ولا جعل الله آخر الاهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین قال الحسین عليه السلام انما خرجت لطلب الاسلاحی امت جدی قرید ان آمرا بالمعروف و انها ان المنکر و اتیره به سیرت جدی و عوی در کندم که اصلاح در فرد و جامعه بعد از اصطاد معنا پیدا می کند همانگونه که معالجه یک بیمار با فرض بیماری معنا دارد اگر صحت باقی باشد تدابم صحت و حفظ و صحه معالجه اون زمانی معنا پیدا می کند که بیماری وجود داشته باشد و برای زدودن و از بین بردن بیماری دست به کار شدم اگر امام حسین علیه السلام میفرمایند من می خواهم در امت جدم اصلاح کنم امت جدم رو اصلاح کنم پس معلوم است از دید اون حضرت این امت فاسد شده است و این فساد در اون حد بالا رفته که به قیمت جان و شهادت اون حضرت و اسارت خاندانشون هم می ارزد قدر مهم است و فساد اونقدر بالا بالاست که برای از بین بردن این فساد و اصلاحی که مورد نظر امام حسین علیه السلام است پذیرش تمامی مشکلات واقعه کربلا از دید امام معصوم تصندیده است قرآن کریم در آیات بسیاری این معنا را میرسوم نمونههایی هایی را بحث کردیم که در تمامی ادیان و همچنین در تاریخ اسلام این پیشبینی را نموده است که دشمنانی دانا و دوستانی نادان دست به دست هم خواهند داد حقائق دین را لوس کرده و تحریف نمایند روایاتی را که از پیغمبر فقط از منابع اهل سنت خوندم اگرچه الفاظ و عبارات این روایات مختلف بود ولی مضمون و معنای واحدی داشت به دین مضمون و معنا که بعد از من کسانی دست در کار می شوند. دسته دسته و گروه گروه امت ما را اگر چه خوب قران بخوانند و اگر چه صفوف نمازشون فشرده باشد اگر چه شب زنده و اهل ذکر هم باشند ولی از دین خارج میشوند آن گونه که تیر از کمان خارج می شود و به کلی فرمود پیغمبر بعد از من امت من گروه کثیری از حقیقت اسلام خارج خواهند بود اگرچه ظاهرا مسلمانان، این روایات رو هم دیدیم و بحثش مطرح شد و دیدیم که پیغمبر حتی تأکید بر این معنا داشتند گونه که در زمان من موانعی وجود داشت از که مانع تنزیل وحی و اصل ابلاغ دین بود و من مقاتله در رابطه با تنزیل دین داشتم این موانع بعد از من به صورت مانع برای تعویل دین همچنان اظهار وجود میکند و کسی چون علی و آل علی باید باشد و باشند که برای تعویل دین من مقاتله کنم این رو به صورت کلی در چند جلسه گذشته از قرآن و روایات منابع اهل سنت افت کرده از زبان دو شخصیت که بعد از پیغمبر اسلام دوست و دشمن در عظمت و بزرگی و شخصیتشون نمیتوانن کوچکترین ابهام و ایرادی وارد کنن وجود مقدس امیر المؤمنین و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه از دید و منظر این دو شخصیت بعد از پیغمبر هم به اسلام نگاه کنید چه کسی به اندازه فاطمه سلام الله علیها بعد از پیغمبر و علی دلشبرای اسلام و قرآن میسوزد به نقل تمامی منابع اهل سنت ازون پیغمبر و خدا و چه کسی چون علی ببینیم اونها بعد از رهلت پیغمبر در رابطه با این واقعی که قرآن پیشوینی میکرد و پیغمبر پیشوینی می نمودن. چه فرمودند یک زمان بنده با عنوان یک فردی که فرض فرمایید از دید جامعه شناسی از دید فلسفه تاریخ از دید برخی از اطلاعات فردی میام نسبت به یک موضوعی اظهار نظر می اما شخصی که از نزدیک در اون واقعه قرار دارد و برای ما اون واقعیت را نقل می شما هم از دید پیشبینی من به این مسئله مینگرید و هم از دید آن کسی که ناظر بر واقعیت است یک گونه دیگری نگاه میکنید اینا اگر محسوس تر بخوام بگم پزشکی پیشبینی می کند اگر افراد این غذاها را بخورند در این هوا استنشاق کنند و این گونه زندگی کنند این گونه بیمار خواهند شد این پیشبینی یک پزشک آذر است اما یک افراد دلسوزی که در میان جامعه بودند یا هستند و میگویند از ما بپرسید ما دیدیم کسانی را که این گونه غذا خوردند و در این فضا استنشاه کردند به کجا رسیدند حال ما میرویم در خانه فاطمه سلام الله علیها رو میزنیم میگوییم دختر در خدا ملکه عالم وجود و کوثر جهان حقیقت شما به عنوان کسی که پیغمبر نه معرفی کرده از شمارا را ان الله حیات زبول قذب فاطمه و غرزاله رضاها شمایی که پیغمبر بوسه بر دست شما میزد و شما رو مادر خود خطاب میکرد شمایی که خدا در قرآن شما رو متهر معرفی کرده و همه ارزش های دیگر بعد از پیغمبر چه دیدید اگر چه 95 روز حد اکثر بیشتر در این عالم نبودی در همین 95 روزه بعد از رهلت پیغمبر اون کشفی های آیات قرآن کریم و شخص پیغمبر از زبان حضرت زهرا به عنوان شاهد بر واقعه چگونه بوده است یک ما دو خطبه از فاطله سلام الله ها داریم یکی خطبه ای که به عنوان خطبه پدک معروف است خواستن احقا حق کنن حق خود را بگیرند که چرا صدک مرا زبد کرده ولی در قالب بهانه پدک برای همیشه تاریخ این حقایق رو باقی گذاشت شما یک زمان می‌بینید یه آقایی توی اتاق تنها داره صحبت میکنه ولی با یک شدتی با یک شدت با یک منابه با یک مدارک مراجعه و اسناد میگه نگا برای کی دارید بحث شما یه نفر تو این اتاق این همه مدرک میخونی این همه صنعت میاری این همه داری اشاره به بعضی مطالب میکنی میگه داره زبط میشه برای کسانی که بناتو بعد گوش بدن من برای در دیوار نمیگم من الان نواری موجود است که بنات این نوار به دست دیگران برسد زهرا سلام الله علیه هم فقط مردم اون روز مدینه نبود همانگونه که امیر المؤمنی وقتی وصیتشون رو بیان میکنن اوسی کما و جمیع القلدی و من بلغه و کتابی و همه اون کسانی که این نوشته بنا به دست اونها برسد فاطمه سلام الله علیه ها برای تاریخ اسلام و همه مسلمینی که میخواهند درس بیاموزند خطبه قدس و اون خود را که در مراجعه زنهای ایادت کننده به اون حضرت و سؤال از حالشون پاسخ دادن بیان پر بودن. حضرت خطاب به اون جمعیت فرمودن ویحه هم ان... به اون زنها یه جا میگن به شوهرها تون بگی یه جا به خود مردم مراجع محاتبشون قرار میدن و میفرماین ویحه هم زعزعوها او زهزهوها ان رواسی رساله و قواعد نبو وای بر این مردم اینا چه کردن؟ که پایه‌های اصلی دین را لرزندن، قاعده و پی و بن و اساس نبوت را کندن و لرزندن. سخن روز اول بنده من یک زمان میخواهم به این حسینیه آسیبی وارد کنم آسیب در حد چهار تیشه به دیوار زدن و یا لامپ و شیشه را شکستن یک زمان آرام آرام به این ساختمان رو میکنم ستون‌هاش رو خالی میکنم یه وقت به خود میایم که ساختمان فرو ریخته چه کرده بودن در این نقدر روز که زهره سلام الله علیه ها وای بر این مردم که قواعد قاعده پایه و بنیان نبوت و قواعد نبوت و دلاله راه ها ارشادات و حدایت مردم پایه رو لرزوندن. الا از دال خسران مبین، این خسران رو که ذهاب کرده می برد به قرآن مراجعه کنید. ولی آخر، اینلی انسانه خسر، الا الذين آمنوا و عمل الصالحات. اگر خدا در قرآن سوگند یاد کرده سوگند بر عطر که به جهت تأکید مطلب و اهمیت نسبت به این موضوع این در خسرانم اصل سرمایه شونو میگن ورچکست میشن بیچاره نف ندارن مگر اون که ایمان بیارن و عمل صالح قرآن کتاب نبی آمد مردم مؤمن شوند؟ کجای قرآن فرموده قد اطلاحل مسلمون که اگر اقرار اسلام کردن رسگار بشند قد اطلاحل مؤمنون فرموده و خود قرآن می فرماید اگر مؤمن نباشند در خطرانند چه زرر و زیان و خسرانی بالاتر از این که از دید خدا یک انسان تدیر و زهرات سلام الله ها می فرماید بعد از پیغمبر چون قوائد نبوت و دلالت را جا به جا کردن تی و بنیان این ساختمان من رو لرزندن زالکه و الخسران و مبین این و چرین زرر برای جامعه است. برگردم به مثال در قالب جسم من یک زمان خراصی به صورتم وارد میکنم نه یک انگوشتم رو میبرم یک پایم به جهتی نیاز به قطع پیدا می کند اینا یک مقدار جسمی است. اما چشمم رو کور می کنم. این قابل مقایسه با انگشت بریدن نیست نه چشممم سر جاشه عقل مرا از من میگیرم دیوانه می شدم. اینا قابل مقایسه؟ اگر یک جامعه نماز بخواند، روزه بگیرد زباعر اسلامی را رعایت کند ولی پی و اساس و بن و تفکر و اقائد و جهتی را که در مسیری که خدا معین کرده نباشد آیا قاطعانه نمی شود گفت نماز بی ولای او عبادتیش بی وضوع به منکر علی بگو نماز خود را کند؟ چون واقعیت درونیش چرا زهرانی فرماید سلام الله علیه زالکه اول خسران المبین بعد چند سطر دیگه از این خطبه رو رعا میکنم میرسه به یک آیه ای از قرآن کریم آیه 96 سوره احراف که حضرت زهران این آیه رو در خطبه شاهد میابرند ولو انه احلال غراف آمنو و تقو لفتحنا عليهم برکاتم من السماء سما و الارز ولكن کذب و به که اینی زریفه استشعاد فاطمه سلام الله علیه ها به این آیه شریفه آیه چی میگه؟ خدا میگه یه قانون روزشتم آل امر... سوره احراف آیه 96 به این آیه باید خودتون دقیق بفرماید خدا میگه من یه قانون در این آلم جاری کردم قانون من چیه؟ مثلا قوانین آلم ماده که خیلی هم ساده و روشنه تمام علما در ته در فیزیک و شیمی در جمعی شعور صنعت و تکنولوژی در کشاورزی و دامپزشکی، مگر جز این است که علمانی کوشند قوانین حاکم بر این عالم ماده را که خدا حاکم کرده است بهتر بشناسند تا بهرهی بهتری از این طبیعت ببرند غیر از این که نیست مثلا در علم تب قانون حاکم خدا بر آلم ماده نسبت به ماده جسم ما چیه؟ غذا برای بدن این نقداره این غذا برای بدن این ضرره ودارره. این هوا با این شرایط برای بدن این نقدارره این هوا با این شرایط برای بدن این ضر مداره. یک پزشک یک بدن شناس یک متخصص این امور این قوانی را بهتر کشف می کند. لضا به من میگه اگر می در این عالم نسبت به طبیعت جسم خودت به هر پیش بروی، پس این کارو بکن این کارو بکن یعنی چی؟ یعنی با قانونی که خدا بر این جهان حاکم کرده خودت رو رزق بده. هر چه بهتر بسازی، بهتر بهره مند میشی. یه نمونم تو عالم گیاه و کشاورزی بگم. خدا نظامی رو بر جهان مقرر کرده. این عبارت رو دقت بفرمایید. تغییر نظامی حاکم بر عالم از طرف خدا کار ما نیست و اگر بخواهیم در این زمین کار کنیم خود ضرر کرده ایم. تابوگه با نظام حاکم بر عالم و ماست. تغییر نظام حاکم بر عالم کارمان نیست. تابوگه با نظام حاکم بر عالم تکلیف ماست. هر که هر چه بیشتر بفهمد تابوگه با نظام را آقلانه تر،, تر و آشغانه تر انجام میده نظام مثلا در سیستم کشاورزی، این یک نظام که خدا بر آلم آکم کرده خاک باشد هوا باشد آب باشد مواد غذایی لازم در خاک تا دانه روش کنه حالا من این نظام این خواهم تغییر بدم دانه رو میارم روی منبر رو میگارم منبری که در اون سالها آگه خوندن روایت کندن فضائل بزرگان عالم رو گفتن اما نظام خدایی نیست که دانه روی منبر سبز روشه سبز نخواهد شد آقا تو دل خواهد باید بداری برده چرا تو نظام حاکم پروزگاه بر عالم اینه بروسه کن نظام عمل کن این عالم مادرست در عالم معنا هم خدا نظامی دارد چون عالم فقط ماده نیست ما ملک داریم و ملکوت نظام عالم ملکی نظام عالم ملکوتی اگر خدا راجب به حضرت ابراهیم علیه السلام دارد و جزالکه نوری ابراهیمه ملکوت از سماوات و الارض تمام که در این عالم ما و الله به ابراهیم نشون داد من یه مقداری ممکنه چشم سرم یا چشم دلم ببیند ابراهیم تا ملکوت احلای الهی را هم به اذن الله می‌بیند نظام معنا این آیه ولو ان احلال قرآ آمنو و تقوم خدا قانون گذاشته اگر مردم در غراج در یا ملت ها قوم ها دستجاد مکان های مختلف ایمان بیا برند. با تقبا شدند برکات از آسمان و زمین برای اونها می بارد ولیکن کذبو اما کسانی که تکزید کردند نسبت به چی؟ یعنی ایمان نیابردن با تقبا نشدن وقتی اینجوری شد سعخذنا هم به ما کانون یک قانون خدا وقتی تجریب کنن ما میگیرمشون یعنی به عذاب یعنی به گرفتاری یعنی به بناها به خاطر اونچه که خودشون کس کردن حالا به قصد فرمایی رحرات بلامالیها در خطبه داره چه سیامی رو برای نفعی میگذاره انایت میکنی آیاتی که چند روز قبل خوندم سریع آیا چه می‌فرمود می‌فرمود اگر پذیرفتید بهرهمندی و اگر نپذیرفتید شامل لعنت من میشوید همون گونه که ابلیس وقتی خدا را نخزیر رو خدا فرمود انک رجین ان, اِنَّ علیک لعنتی الی یوم پس تو رنده شدی یک زمان فرد در اثر کفران نعمت از خدا رنده می شود یک زمان جامعه بر اساس کفران نعمت از خدا رنده می شود فرد نسبت به اون نعمت هایی که باید قدردان باشد. اگر کفران نعمت کرد مستحق عذاب فروی می شود جامعه اگر نسبت به اون نعمتی که برای جامعه است کفران نعمت کرد مستحق عذاب اجتماعی می شود چه خسرانی از این بالاتر که زهرا سلام الله علیه ها می فرماید وی برون مردمی که انا اوها اوها ان نازع و آ ای زعزه و ها انا راصيه الرساله و قواعد النبوه و دلاله ذلك و خسران المبین چه ضرر عزیزی کردن این ضرر چیه در آیه بعد مشخص نشه در چی اونها اون گونه که خدا قرار داده بود تقدیرش نشون ندادن بر مبنای عدم تقدیرش نسبت به اونچه که خدا معین کرده مستحق بلا و عذاب شود. بودن. چه عذابی از این بالاتر که حالا من یکی دو نمونه از غیر شیعه میگم تا هنوز فرمایش شخص زهرا و فرمایش کف زهرا امیر المؤمنین علیه السلام رو هم بگم آقا سید و که دیگه شیعه نبوده یه نویسنده روشن فکر قرن اخیر سر و صدای در جوامع اهل سنت تا حدی که جزئه پایگذاران اخوان المسلمین و و اعدام شد در رابطه با این تفکرش در مرش که ما میخواهیم جامعه نوین اسلامی برپا کنیم چنین کنیم چنان کنیم کسی که اتفاقا نسبتی شیئم اون مقدار گاهی سمفاشی دارد که در این تفسیر فیزلال القرآن جسارتی به امیرون مؤمنین کرده که کتی دیگه ای نکرده و من نمیگم جسارتش چیه در زیر آیه لا تغربت و, و انتوم سکارا یه هم سادمیه در این حال در کتاب الادالت الاجتماعی صفحه 182 و 186 دیگه سید قسمه با اون تعصبش به عنوان یک ناظر قرن چارده هم قرن پیسول میلادی و چارده همه هجری نسبت به بقایه بعد از پیغمبر اگر زهرا سلام الله علیها ها از دید من شما ملکه عالم وجود بعد از پیغمبر نگاه می کند این گونه می خاطر بر فرق من و تنسیل من تشبیه من قیاس من چاره ندارم برای تحبیق بعد از اونجا به اینجا میام میام تو قرن خودمون آقای قدر در کتاب الادالت و اجتماعیه صفحه 182 تا صفحه 186 مزامینی دارد که یک اینه از بدترین تصادفات و وقایی اتفاقی تاریخ تأخیر علی و تقدیم عثمان بود که مروان را که فردی ناپاک بود بر حکومت مسلط کرد و اگر حسن حسن یاور شده بود و علی خلیفه میشد شد تعالیم اسلام استمرار می یاد و سوء طالع بود که مردی ضعیف و بیلیاقت و کفایت مثل عثمان خلیفه شد و اون بلاد سر جامعه اسلامی آمد که نمیباید بیاید این مدار شده اعتراف کرده بیشتر از این شبات باید برای تون میخونم فردا عمری باشه فعزیل بلا بعد از رحلت پیغمبر رو هم براتون تون خواهم کرد ولی آقای خود شما دو مطلب در اینجا بیان کردی یک بدشونسی شد که علی نشد عثمان شد چرا میگی بدشون تکیه نویشنده چه تکیه محققی تکیه بررسی میکنی چرا نمیگیم بلا بود که عمر سر جامعه اسلامی ها بود مرد باش شحامت بشه حق رو بگو عالم محقق منصف کتی جرحت و بیان حق داشته باشه ما در مجتب عبدالله این درست ناموخ الحمدلله که جان انسان در این چند روزه دنیا اونقدر ارزشیم. آورد. که حق را کتمان کند ولذا پدر این حسین جانم به فدایش فرمود، نه زندگی اونقدر شیرین است که انسان به خاطر این زندگی بردگی را بپذیرد پذیر نه آخرت اونقدر کوچک است که انسان به خاطر او را از دست بده هیئات من نزله يا ابو الله این شعار ارزنده انسانی بر مبنای ارزش های واقعی رو ما آویزه گوشمون قرار میدیم آقا چی شد که عثمان اومد علی نشد ولی شورای شش نفری درست ابراز در بلاغه میخونم خطبه شیخ چه ناله ای علی میجنه راجبه همین دیگه آقا میره چیکار کردن چه نقشه کشیدن چگونه دست منو ببندن و چگونه میدونه بدن به دست شکمبارایی که برای چریدن قطبه شقیه هست نیکنم الان براتون نشالله برای چریدن های تازه علفزارهای بهاری همه ی... شوارو دیگه پا میگذارن علی داره میگه اینا شکم بارها بودن مثل شترای گرسنه‌ای که مدت اینا رو تو آغول نگه داشتند نتونستن یه شکمی از عزا در بیارن تا بهار شد و مزرعه سرسبز شد رهاش کردن حجوم آوردن چون تو این علفا رو اینا اینجوری به جان بیت مسلمین افتادن و اسلام رو یک مزرعه سرسبز چریدن و چراگاه سیر کردن شکم خودشون قرار دادند بر جان و ما. مردم و مسلمان تاقصند اینو علی اینو حضور بلاقه میگه آقای سید قط شهامت بشته باش سید قط که رفته من به عنوان روی خطابا با محفظی میخوا کنم چی شد شما دو مطلب یک میگید سوه تاله بود حتم تاله نبود نه خیر دو آمل. دشمنان دانا بودن دوستان نادان امروز من و شما تا زمانی که دشمنان دانا هستن همیشه هستن با دانایی دشمنی میکنن ولی دوستان نادان باشند آب و آفیای دشمنان دانا بریزند همون غذایه ادامه خواهد یافت اون غذایه چیه؟ فرمود وقتی که حسن حال نبود سو اطاله شد عثمان آمد چی شد؟ یه خود میگه اون بلا به سر مسلمون ها آمد که نمی بیاد چه بلا اومده حالا بعد برای تو که او هم اعتراف میکنه پس شد دیگه غزالی نویشنده معاصر مصری نه اون غزالی معروف احمد غزالی و یا اه، اه، اه، محمد غزالی به زمان قرن هستوم هشتومه نظامیه برداز رو عرض نمی کنم نه خیل. از نویشنده های معاصر مطری خیلی هم روشم فک قلم عجیبی هم داره کتابی داره الاسلام و الاستبداد سیاسی الاسلام و الاستبداد سیاسی اسلام و اون استبدادی که در سیاست های اسلامی در طول تاریخ به وجود آمد و استبدادی عمل کرد و که اسلام استبدادی نبود صفحه 187 و صفحه 188 این کتاب چه میگه؟ وقتی بنی اومیه بر اوضا مسلط شد پنج خفیصه رو برای حکومتی که به نام حکومت اسلام در اثر بنی اومیه در جوامع اسلامی حکومت میکرد نام میبره یک حکومت به صورت حکومت فردی و پادشاهی در آمد دو مردم مستر قدرت و زمامداران نایب و خادم مردم از بین رفت. حاکم فرمانروای مطلق شد. سه مردم ضعیف و و بیبهره از معارف اسلام و گناهکاران سرپوت رفتند چهار تعصب جاهلی و قبیلهای جای وحدت مسلمین را گرفت پنج کارگزار حکومت آزاد بود و هر کاری میخواست میکرد اینی که غزالی اعتراف میکنه به بیصاده‌ی معاصر نسویی آقا همین پنج خطیشه ای رو که رو اسم میبره من یکی یکی با توجه به تاریخ از منابع اهل سنت ان روزهای آینده نشون میگم خدمتتون چه قوی تر از ایناست ایشون رو اسکوپت خب اگر بنا شد یک جامعه واسش اینجا بکشه این جامعه بیمار نیست این جامعه آلوده نیست این جامعه بدبخت نیست بدبختی که به نام اسلام نیست نباید زهرا سلام الله علیها ذلکا هو رسول الله النبی، که دیگر بر مائشات از زهرا بکنم. با صدقه صدقه. سلام مختار الله لنبی هیدار انبی و معوا از سیاء زهرا حتیک تنفاق. تو سی کلمه از در این خطبه رو من خدمتون رو ارزوی کنم در قسمت فرموید قضرت وقتی اومدن تو مسجد خطبه دارید فرمودن خدا اینه پیغمبر اینه از حمض الهی و خصوصیات نبوت، ها رسیدن خلقه احکام و بعد رو کردن سران مهاجر و, و انسار در فرمودن سلامت سار الله لنبیهی دار انبیاء و معرا اصیاء وقتی که پیغمبر خداوند اراده کرد پیغمبر رو ببره اون جایی که انبیاء رو میبره اصیاء رو میبره یعنی پیغمبر از این دنیا برد جایگاه اصلی خودش در مله اعلی پیغمبر زهره فیکم حتی نفاق حتی چیه نفاق چیه زهره چیه ثیقه های ریز نامرئی که اگر شما تو خرسفندپی که دارید عبور میکنی به چش نمیاد. ممکنه یه تیکه تو جوراب شما داره یه تیکه تو لباس شما داره این تیک اونقدر درست و قابل رؤیت نیست که راحت ببینی بچینی بندازیش دور اما همینجور راه میری هیت به پای شما می‌خલે حرکت میکنید این تو لباس شما تمام بدن شما رو می‌آزاره هی لباس رو در می‌یارید ورزشی می‌کنید این چیه که داره اینجور من اذیت می‌کنه اینو می‌گن حتی که یعنی اون تیکای ریز نامرئی خیلی اذیت که به راحت هم به چشم نمیاد حتیشه نفاق بر بود ت زهرا یعنی یه وقت کافررست، شمچیر برداشته در مقابل پیغمبر میگه من دین شما را قبول ندارم میخواهم با شما بجنگم. اینجوری نبود همه بگن آقا به پیغمبر نه من جای پیغمبرم منبر میرم تو محرام پیغمبرم نماز میخونم جان نمازم آب میکشم خیلی مقدت مآبم حرکت میکنم اما کی خاری شده از بر پیگره اسلام به دیان زهرات سلام الله علیه این منافقین منافق که خودش رو جا در جامعه اسلام اون چیزی که به چشم عموم نمیاد ولی چشم چیزبینه من زهرای دختر پیغمبر داره میبینه و الان که یک دو هفته از رحلت پیغمبر بیشتر نگذشته تو بچه پیغمبر حیابم را برای همیشه به ملت اسلام میرسانم برای پیشهره اسلام این خارهای نامرهی نشسته است، بدن اسلام بیمار می شود با این خارها چه بیماری هایی باز از این کنتر زهره ظاهر شده معلوم شد حتیک تن پا اون تیرهای مناسبان و ثمل الشمله و دین جلبا پوشش این پوشش دینی این لباسی که بنده می پوشن منو از سرما و گرما محافظت کنه حالا اگر خود این لباس در اثر اون تیرها و خارهایی که ای به اینها چسبیده پاره پاره شد خراب شد دیگه این لباس به جایی که منو گرم کنه منو نگه داره من پوشش من اذیت میکنه حضرت میگه سمله ای شمله جلوا به پوشش دین اینجوری شد پوشش دینی که برای بود به نفع شما بشه پوشش دینی به ضرر شما شد یعنی ای خاش معاقی یه از اسلام نمیزن ای خاش یزید دم از اسلام نمیزن بگذری اینو جدن از میکنم رو شفت کنیم بگذری که شما به برکت خون عبی الله و شهادت فاطمه زهرا و علی و آل علی امروز در دنیا گردن کشیده دارید و میگویید اسلامی که ما میگوییم اسلامی که علی و آل علی نشون دادن اما اگه اینو بگیرید کنار آقا با چه گردن کشیدگی و افتخار به دنیا میتونید از اسلام دادن اسلام آبیه اسلام اسلام یزید اسلام خالد ابن وزید که انشالا برای تو میگم چیه اسلام ولید اسلام مثلا حارون اسلام محمود چی چی داشته که ما بخواییم ما اگر بنامش اون تاریخ دنیا بیدیم مسلمانیم ما خجالت بگیشیم به خدا قسم خجالت دارید کارهایی که به نام اسلام انجام شد لذا قاتم این زهران سلام علیه ها می فرماید سیکم حسیکت و نفا و چمل او جلباب و دین کوشش دینی فاسد شد کهنه نشد، پاره و دریده شد و نتقه کازم القاوین و نبقی خاملال اقلین اونایی که ساکت بودن تینه ها رو تو دلاشون جمع کرده بودن یه گوشه این حرف نمی زدن منتظر بودن تا نیششون رو بزند یه دفعه به حرف در اومدند و فرومایگان و پرسه ها یه گفه تو عرص خودشون رو آشکار کردن و حضر عرص نیب المبدلین و نعره صبحکاران در میان شما آشکار گشت و خط عرصی کم و در عرصه شما میدان شما اینا خود نمایی کردن و خودشونو نشون دادن و ابل از شیطانو رأسه و من معذر شیطان شاخات از و از پناگاه و جایگاهش ترابد که حالا وقته که شاخمو رو بزنم و چه شاخی هم بزنم چه کشاخی بالاتر از این آقا از شما می‌دونم یه کلاسی ما داریم دیگه تشبیه تفصیل در مثل نیست نیستن قابل نیست ولی در حدی یک کلاس داریم. پنجاه تا شاگرد این کلاس نشستن اینقدر گشتیم این در زدیم اون در زدیم, زدیم، ناله زدیم فریاد زدیم آقا یه معلم پیدا کنیم این معلم بیاد واقعا چند کلمه ما یاد بده فرض کنید معلم واقعی ارزنده عالم دل سوز کمی و چنانم پیدا شود این کلاس شیاطین از این برموبر شاخاشون رو نشون دادن شیطان ها اومدن مغرزین اومدن پاشی کننده ها اومدن دو کار کردن یک اینقدر معلم رو آزردند و اینقدر معلم رو عذیب کردند که اصلا حال تو کلاس موندن حتی نداشت مثلا از این بدتر در ها رو منحرف کردن انقدر تو ذهن ها آلودگی ایجاد کردن که این شاگرد به که دامن معلم رو بگیره بگه تو رو خدا به من بگو به من یاد بده من میخوام از بیاموزم وقتی معلم در کلاس وارد بیاد تو اکثرش چند تا پایین و جوری برخورد کرد که معلم از کلاس بکنه بیرون آیا این دو کار رو بعد از کردن یا نکردند یک شما تو زیارت عاشورا این جمله روش دقت کنید لاعنا الله عمثل دفعتكم کمن مقام و ازالتكم ع مراتب و کمتی رد الله کا لعنت ها لنت بر اون مردمی باام که شما را بر مقام و جایگاهی که داشتید درد کردن چه جایگاهی و نابود علی رو من برشین و نبود علی رو محرایان و نبود علی درس بده علی رو به چه کارگمی؟ تو مزهح مدینه داره بیل میگنه و قما میکاره. مردم رو این علی رو پس معلم رو کنار زدید مردم رو چگونه بارا بردید علامان و غیر اطماع میگه نحران تلا مول علیه ها علی از را رسید ما دوره بشتر زهره بودیم علامان و غیر بگه پسید علی جانی سآلی از شما دارم راست میگن از خونه میری بیرون به سلام نمی علی علیه علیه سلام فرموده باشن و هر نه اینکه به من سلام نمیکنن من هم سلام می کنم. جواب سلام من رو هم نمی ده ببینید سلام بکنن نکنن مگه من اصلح بین او و بین الله، اصلح الله بین او و بین الناس، و من اصلح سریدته او، اصلح الله علیه، و من عمل دین الله امر دنیا کتناد نظر. و علی الزهراء برش مهم نه، محسبش ضعف. ای این به جای اینکه دور علی بجردن و پروانه شمع وجود علی بشن تازه کار به جایی دیست که جواب سلام علی رو هم نمیدن بلکه باید برن تو این کلاف نعره بزنن شمعی واقو ز اون که دیده ای. ای علی که جمله عقل و دیده ای شمعی واقو ز اون که دیده ای راب و ای علی مرتضا ای پس از سوال غذا خسنال غذا اما به جایی هم کردن زده کردن تا اون هست رودا شورا این معلم در مقابل این جمعیت میگه مردم این امامه پیغمبر هست یا نه این نعلیه پیغمبر هست یا نه این زور علی هست یا نه من پسر پیغمبر هستم یا نه آیا پیر مردای لشکر ابن زیاد شهادت بدید پیغمبر منو میبوشید یا نه منو رو شونه یا نه مگه ندیدید پیغمبر بالا نمبر بود نه بود منو هر کنم من وارد مسجد شدم پام خورد به یک فرچی حسیلی افتادم زمین پیغمبر صحبتش و غصت از منبر اومد پایین منو بغل کرد از بود بالای منبر منو میبوسید و میبوئید و میفرمود حسین و منی و انا من حسین مگه ندیدی پیغمبر بالا منبر بود من داشتم از در وارد میشودم یه بچه چار پنج ساله پیغمبر روش رو کرد به طرف در برود الگیا یا حبیبی الگیا به من میگفت و با من نغمه عاشقانه سر میداد باز چهار کلمه صعب کنید با شما حرف بزنم شاگردان به جای اینکه گوش بدن سعی می‌خاروند به سوی معلمشان این خسران مبین نیست این درد نیست در یک جامعه که معلم را بردارند معلم را سنگ بزنند شیطان های ناآگاه نا که جز شیفن از تیزی نمی به جای اون معلم برن سر کلاس بنشینند. ازا زهرا سلام الله علیه ها می فرماید زهرا فیکم حسیکتون نفع و شمل جلباب و دین از علی علیه السلام وقت اجازه نمیده یکی که بخونم بقیهش رو بگذارم برای نظاهرن فرمایش از رو نمی رسیم یه اشاره می کنم خوندنش رو می برای انشالله فردا. امیر المؤمنین زیاد تو نهدول بلاوهی درد و داره زیاد فقط من دو تا انتخاب کردم برای شما یکی خطبه سوم نهدول بلاوه اگر میخواهی یه مراجعه بفرمایید خطبه معروم سر شقشقیه قوه این خطبه و خدا شاهده از یک طرف عظمت فساحت و بلاغت و بزرگی مطالب و عمق معارف و اینا که قوه میکنه از طرف دیگر اینقدر میبینید اکثر شما میدونم این خطبه شاید که شاید آشنایی زیادی با خطبه دارید اینقدر این خطبه جانسوزه شاید تمام رنج دل علی رو آدم بتون از این خطبه به که ما میتونیم البته بفهمیم که چه کشیده مولا و چه میگه حضرت میفرمایید اما والله لگا تقمتها فلانون که فلان خودش یه درده یعنی حتی علی حالی اومده دین به ما بشناسونه داره چیجوری عرف میزنه با طبیعه. یعنی معلمی که رفته سر کلاس انقدر شاگرده شیچانه و قبادی رو توی این کلاس گذاشتن که معلمه پایی عرف بزنه این دیگه درده این آدم رو میسود به مخلصت خون آدم رو علی که باید مگه حدیش نخوندم فیغمبر فرمود تو باید تذکین کنی برای امت ما مشخص کنی میگه لغت تغمت ها همانا پیراهن خلافت رو پوشید والله به خدا قسم پوشید فلانون یعنی ابوبک و ان نعو لا يعلم محل الغطب من من الرهايا انذر ان ولا غيره الى کرد میدونست این میدونست که به قسم کنید نیدارست می که موقعیت من برای خلافت زعامت امور مسلمین جامعه رو بری کردن مثل اون میله بین دوتا سنگ آسی ها بود نیده محرکهی که داره به عرکت میندازه این گرزش با سنگ رویین به پره در و اگر در رفت نه تنها گندم و جمع رو برای ما آزمه می کنه خرابکاری ها می کنه دیگران رو می و از بین میبره. ما زمانی این دو تا سنگ و در آن گردش مفید میدانیم که زمینی که میگرده کنترل بشه مهار بشه و با این مهار شدن گندم رو برای ما حد بسیار آردش مکنه می من بودم که می جامعه اسلامی رو کنترل کنم و نگه دارم یعنی حدر و انت سیل و لا الیت پیل منم که چشمه های سیل های خرو آخ، چه میشد جامه سیله های خروشان ارزش ها از آسیای خدا و ولی خدا این دوتا نگه میدشتم خدا و ملت خدا را محور خدایی باید نگه داره حد شما را از قدرت بیمثل چون بندگانی با در زیر چرخ بیشکون چون شما را پا از خط فرمانش برون خواست معمار ازن که نهرباق بیشتون بر زمین ناید برون الا به فرمان شما. بر زمین ناید برون الا به فرمان شما. این دو قطب خدا خلق خدا باید چی از خلق خدا زشوی خدا پیدا بشه محور خدایی بینشون باشه محور خدایی و نیوندارو برداشتن خلق پرونده شد از خدا کجا را به جایی که سلمان تو جامعه داشته باشیم عمر ست بگرد دوز آشوران عمر صد حد هرمه است اما این دوتا رو نگاه کنید به زمان بودم که چشمه های خروشان ارزش ها فضائل برک آم همینجور ترابش میکرد چکتی نمیتونست به اوج پروازی که من بنابوز شما رو به پرواز بیارم برسه؟ نجفت کنید کسی نمیتوانه بلند کنه جامعه شما رو به اوج در بیاره سربانه بشید به دنیا فعث بفروشید و بگید ما این در سایه قرآنی میشیم اما چارده قرن از اسلام گذشته هنوز جهان ثبوتیم هنوز جیرخاره علم غربیم هنوز از صنعت دیگران باید بهره ببریم چرا؟ برید معلم از کلاس بیرون رندیم ممکنه بگید نگه معلم معلما قبول کردن که این جوریه سنت خدا اینه هر کس تو هر میزانی که کار کنه نتیجه میبره ولی هر که کفران نعمت کرد خداوند عذابش رو زیاد میکنه کسی که متوجه نعمتی نشده کفران نعمت براش معنا نداره کسی که متوجه شده و کفران کنه واژه حادثه اینو خدا در روز قضیر خون گفت کجا همه این آیه رو شنیدید از لکم دین اپ بعد الیوم یه اسان لذیع کفارو من دینه کنم ولی از پخش از دوم اکثر دولا دینه کنم این قسمت قطعی چی میخواد که الیوم یه اسان لذیع کفارو من دینه کنم کفار امروز معلول شدند چرا؟ چون کفار یاد میکردند که پیغمبر بره میانی دینو ضایع میکنن وقتی دیدن خداوند توسطیله علی که ما شده از طریق پیغمبر ای حوا پیما یا اوجیران در او خالقانه و مسئول دیگه نمیشه کاری کرد ولا تخشوا کفار كفار نذستی بخشاونه ولی از من خدا به از خدا به چی چون قانون من اینه اگه نعمت دادم لا ان شکرتم لازیدن نکون و لا انكفرت این عذاب لشدید به ترسیدا اگه کفران این کارتون به کجا برسه پس از نظر قرآن امکان تحریف دین هست لو شدن دین هست از نظر روایات پیغمبر پیشگویی بود از نظر ناظر در صحنه یک زهرا پرمول ها اون فرادارو اگر ما فرمایشات خود از زهران رو بخوایم راجی به وجای بعد از پیغمبر بگیم یک سال وقت لازم داره واقعا همون دو تا خطبه امیرالمؤمنین فقط یکی دو کلمه اشاره کردم که بقیه شو ان شاء الله بعد, یه بعد جامعه به کجا رسید یه نمونهش عاشورا عمر سعد نمیدونه چه ما واسه این کیه عمر سعد چی میگه ملک وعده مقام پول خور نمی که اگر در سپاه و قیل الله نزیاد باشه رو کجا میرسه رسه خب ملک و حکومت و سلطنت و قدرت و اما تربیت انسان‌ها ها رو به کجا می رسونه توجه به معلم انسان‌ها ها رو به کجا میرسونه؟ این نکتر رو تقاضا دارم انایت کنید آقا جمع لفت انسان اگر چقدر معلم رو نمی‌دونه ولی بالاخره یه پیوندکی با معلم داره همین پیوندک ممکنه باعث بشه که همارونی کلمه میدونن از داره عبارت تو و کاف و تصویر و اینها بودانده با مسابقه میگن یه پیوندی یه ارتباط مختصرکی هم شده داره همین چه میکنه بالاخره درشو میگیره خور این پیوند رو قصد این دو نمونه رو در رابطه با کربلا هر بکنم یک، وقتی که استفا در محل در اشراف من دیگه برخورد کرد امام حسین اونا رو سیراب کرد و چه کرد و زور شد و فرمود ازان بگید و ازان گفتند به دسته های خودشون فرمود در اینجا نماز بخونیم با هر فرمود با لشگریان شما نماز کن و بخونید هر چی گفت؟ نه آقا ما پشت <تصفيق> اضافه لشکریانش گفت ما به ماموسین اقتدام کنیم. پشتر ماموسین نماز کنیم. نشون میده نه. هنوز خیلی شاگرد از محلق جدا نشده. به دست تو میگیره محلق برادرم. ارتباط تو با ماموسین زمان گفت نکنیم. دعای عهد تو بخون. سال از رو بخون این حرف پای رو فکر ما بلیم بزنیم آقا اینا کار به جایی تاریخ بکنید تو از بر... تو بهره بر... بحران بحران ح دان شریعت سنگلجی اومد، تطبیعی اومد، دیگران اومدن گفتن زاز از پرده چی شد؟ این تو قضایای دیگه، قضایای دیگه اگه فرصت باشه، تو اثر امام یه چیزای دیگه، گای تو جرائد، گای تو مجله، گای تو بعدین اشریات شما متوجه واس خدا قرآن دین بر امام زمان، امام حسین فاصله زیعت ارتباطات کنه گردان خودت می‌بینی شگونه داستانه ایران، لظاهر یک نماز نما کوثرش نماز می‌خونه، دو ما حسین، منظورم اینه که کنی کنیم؟ خود والله ابن زیاد دستور داده شما رو محاصله کنم، در کنترل نگه دارم یا با یک بیعت کنید یا همینجور شما رو ببرم تحمیل افنیز یاد بده. حضرت من با یزید بیعت کنم سکلت که اون مادر مادرت به از آزد بنشینه فرش نیستا که می امام خوش دادی که در زبان عرب کنایه از نوعی مثلا اظهار و تأثیره خور عدبشو ببینی گفت آغازون هر که غیر تو که اسم مادر من رو من به مثلش جواب میدادم اما مادرش زهران موسیقی در تو زحرات. و وقت این ارتباط از جانب اون و علم میبینه در کلاس رو کرده اومده مدید کلاس شاگزا شیطون سرکش یابی بادی تاقیش اما یه شاگرد در تایی دلشی انگیزه میگه من اون رو رعا نمی کنم تا وقتی که لذار روز آشورا آخرین و حضاب عبید الله یا ولایتی خودشو یه جرده به قلب خورده یه وقت یا هور معروف و خیلی شجاع بود خیلی هم جنگی بود به همین جهت او را انتخاب کرده بودن اولین بار برای امیری لشکر از عمر سعد حتی یه وقتی دیدن هور داره می لبزه. رنگ چهره عوض شد چهره زرد شد یه عادت خاصی پیدا کرد یکی اومد جلو هور و پرسونه بودی تا آدم بودی چیت شده قبطه به خدا خیلی دارم ترس قتل ت به خون حسین آقشت شد انسان این مقدار بخواد خود رو آدود کنه یه وقت دیدن عکسش و نهیب داد به بهانه آب دادن راه رو کچک کرد دیدن هر رفت رفت از قرارت سپاهی مام حسین علیه السلام اومدن به مام حسین گفتن آقای یه تبارهی داره به سوی ما میاد فرمود راشت بدید میشوند یا آقا عبدالله فراق به جان مادر به ما راه بداد. جان باباد علی دل ما را با دل اولیایی که تو میپنگیری پیوند بودن این راه رو برای ما باز کن این جرأت رو به ما هم به تابان این نورانیت رو برای ما میجاد کن فرمود راه باز کنید میشناسیم راه رو باز کردن دیدن هوروات بره افکنده اومده امام حسین علیه السلام دست مردیر شوند سرش رو بالا آورد گل هر این جامعی ها باز پرش رو بالا میگیرید کسی آقا من کسی بودم که را رو از شما رضا شما اجازه می‌خوام اجازه بدید من اولین کسی باشم که برم برای شهادت اما ببینید مقامش رو به کجا میرسه این انسانی که یک ارتباط با معظم خدایی برقرار میکنه کار با اونجا میرسونه وقتی شمشی بهش وارد شد نیزه زدن چه از حق به زمین افتاد فرض شکافته شده یه وقتی سرش دامن کسیه چشمار که باز کرد این دماغ حسین علیه السلام سرش رو به دامن گرفته نمی دونم گفته یا شرایط حال خودش نشون میده ده آقا راضی شدی تو نبتم جامع و غذیبه کنن امام علیه السلام در آوردن زخم سرش بستن این مداد استخاب رو هم بود آدن اما لا یا اومکه یا وازده جان صدایت و یا حسین بزر نگاه و مظلومان آدم اون وقتی که افعظ به زمین امدازی کی سر حسین رو نگاه یه نگاهی به راست یه نگاهی به چم دید هز هر طرف ما سر کرده بدن هم رمد لازم رو برای عرکت نداره مشتی از خاکه کف نگاه رو به صورت متقایی درابد کارو رو یا کار جهان را و اعلام الهی رضت بر لا معبود سواک